وجہ ہر کی لیا هم دمو هم صحبتے تائے گل بو سر تا چا بول بو ہر کی یا برہم دمو ہم صحبتے تائے گل بو سر شوق و ذوق تا چا چا گزارے بول بولے بول بو سر بہ بوستن جی اگر قدو کہ شوتار وبینا سر به بستونجی اگر غد بکشاو تو رو ببینا رو به بید مجنون لار زاو پوشی شوله بو رو به بید مجنون لار زاو پوشی شوله بو صموله خمود خوش بود دارم نرگس شهله مست و مازونن جادو دارم صموله زلف خم تو خمود خوش بود دارم نرگست شهره مصدود مزانه جادو دارم